سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پاکست حقوق من خوش آمدید در این قسمت در مورد صفت صحبت خواهیم کرد سوال می شود که جهت استخدام به شرکتی مراجعه کردیم و از ما صفت خواستند داستان این صفت به چه شکل است؟ خب اولا صفت این سری فرم های چاپی هست که علال از بانک ملی تهیه می شود شاید تبدیل به فرمهای الکترونیک هم بشود در اینجا باید دقت کرد که اگر از شما صفته سفید امضا خواستن از ارائه و تسلیمان خودداری کنید و مندرجات صفته رو حتما پر بکنید اگر صفته کلمه متعهد رو میبینید که منظور شمایی هستید که قصد استخدام شدن رو دارید. در درانجایی که می نویسد به حواله کرد باید اسم زینف رو یعنی کسی که سفتر از شما می گیرد بنویسید. حالا اگر شخص از شخص اگر شرکت از شرکت و حتما بابت درد شود یعنی بابت تزمین قرارداد شماره مثلا دو مبرخ 55400 پس وقتی ما این قسمت رو بنویسیم و میزان تعهودمونم ذکر بکنیم جای نگرانی نداریم و احتمال سو استفاده از این سفته وجود ندارد بعد هم که کار تمام شد یا بنا به هر دلیلی قرارداد شما تا آخر مدتی که گفته بودن ادامه پیدا نکرد با توافق هم اصلا خاتمه دادید به همکاری یا اصلا به دلیل اختلافی که حادث می شود حکم از مرجع ساله به ختم همکاری مثلا داده می شود یعنی به گناهی می شود که شما دیگر باید آنجا را ترک کنید حتما تکلیف این سفط را باید مشخص بکنید یعنی اگر آنها این سفط را به شما مسترد نکردند شما باید به نزد متخصص حقوقی بروید تا به شما بگوید که چه اقدامی را باید انجام بدهی چون اگر موجبات اصول وچه آن سفته فراهم نشده باشد. حالا بر طبقه اون قرار دادی که بین شما بوده است. دیگر دلیلی ندارد که آن سفته نزدان شخص باقی بماند. پس از دادن سفته سفید امضا حتما خودداری کنیم.